ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل أحياء ولا كلا تشعرون و مگویید به کسانی که کش میشوند در راه الله مرده بلکه آنان زندهند ولی شما در نمیابید. آبید. و لنبلون نکم بی من الخوف والجوع و نقصین من الاموال والانفوس والثمرات و الصابرین و البته می آزماییم شما را به چیزی از ترس و قرصنگی و کاهشی از اموال و جانها و محصولات و مجدد شکیبایان را <تصفيق> الذين اذا اصابته مصيبه قالوا ان لله و ان راجعون کسانی که چون برسد به آنان حادثه ناگواری گویند همانا ما از آن اللهیم و همانا ما به سوی او بازگشت کنانده‌ایم اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولائک هم المهتدون آنان برانهاست درودهایی از سوی پروردگارشان و رحمتی و آنان خودشان هدایت یافتند. این الصفا من شعائر الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطْطَوَّ فَبِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ همانا صفا و مروه از نشانه های دین الله است پس هر که حج کند این خانه را یا عمر گذارد پس گناهی نیست بر او که تواف کند میان آن دو. و هر که به دلخواه انجام دهد کار خوبی را افزون بر فرایز پس همانا الله قدر شناس داناست. ان الذين يكتمون ما من البينات والهدى من بعد ما للناس في الكتاب کسانی که کتمان می کنند آنچه را فرو فرستادیم از نشانه روشن و هدایت پس از آنکه روشن ساختیم آن را برای مردم در کتاب خدا آنانند که لعنتشان میکند الله و لعنتشان میکنند لعنت کنندگان. إلا اِلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرحيم. مگر کسانی که توبه کردند و اصلاح کردند کارشان را و آشکار نمودند حق را پس آنانند که باز میگردم با رحمت خود بر آنان و من آن بس به پذیر مهربانم این الذین کفر و ماتو و علیهم الله و الملائکت همانا کسانی که کفر ورزیدند و مردند در حالی که آنان کافران بودند، آنانند که بر آنهاست لعنت الله و فرشتگان و مردمان همگی. خالدین فیها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون جاودانند در آن آتش. تخفیف نیابد از آنان عذاب و نه آنان مهلت داده شوند و, إله و خدای شما خدایی یگانه است نیست خدایی جز او که مهر گستر مهربان است